مستجر اثر رولان توپر ترجمه کروش سلیم زاده با صدای آرمان سلطان ساده. گروه فرهنگی آوانامه با همکاری نشر چشمه فصل اول مستجر جدید بخش اول آپارتمان ترلکوفسکی در آستانه بیرون انداخته شدن از خانهش بود که دوستش سایمان آدرس یک آپارتمان خالی را در خیابان پیرنه به داد ترلکوفسکی به دیدن آپارتمان رفت. سرایدار که زنی بد بود ابتدا از نشان دادن آپارتمان خود داری می کرد اما یک اسکناس هزار فرانکی نظرش را تغییر داد. بعد هم با همان قیافه قهرامیز گفت دنبال من بیایید. تلکوفسکی مردی سی و چند ساله، متین و مؤدب بود که در زندگی بیش از هر چیز از بی‌نظمی و اختشاش بیزار بود. برای او که زندگی ساده ای داشت، احتمال از دست دادن سقف روی سرش چیزی کمتر از یک فاجعه نبود. به خصوص که درآمدش هم اجازه ولخرجی زندگی در هتل را به او نمیداد. البته مقداری پس انداز در بانک داشت که برای پرداخت ودیعه روی آن حساب می کرد. فقط امیدوار بود مقدار ودیعه خیلی زیاد نباشد. آپارتمان از دو اتاق تنگ و تاریک تشکیل شده بود و آشپزخانه نداشت. تنها پنجره که در اتاق عقبی بود مستقیما رو به پنجره دیگری به طور غیر عادی بیزی شکل روی دیوار آن طرف حیات باز میشد. ترلکوفسکی احتمال داد که پنجره مال یکی از توالت های ساختمان مجاور باشد. دیوارهای آپارتمان را کاغذ دیواری زردی پوشانده بود که در چند جای آن لکه‌های بزرگر رطوبت به چشم می‌خورد. تمام سقف را هم شبکهای گسترده و در هم تنیده از ترک های بسیار ریز همچون رگ های یک برگ پوشانده بود. تکه های ریز گشت که از سقف به زمین ریخته بود با صدای خشکی زیر کفش‌های شان خورد میشد. در اتاق بدون پنجره یک بخاری کوچک گازی توی تاخچه ای از مرمر ارزان قیمت داده شده بود. سرایدار که ناگهان لحنش ملایم تر شده بود، گفت مسجلی که قبلا اینجا زندگی می کرد، خودشو از پنجره پرت کرد بیرون. می از اینجا محل سقوطشو ببینید. بعد هم ترلکفسکی را از میان توده ی تلمبار شده اسباب از اساسیه به سمت پنجره برد. و پیروزمندانه به بقایای شکسته یک سقف شیشه‌ای که سه طبقه پایینتر رو در حیات بود، اشاره کرد. هنوز نمرده اما امید زیادی هم به زنده موندنش نیست. بیمارستان سن بستری شده. ترکوفسکی زیر لب گفت: اگه حالش خوب شد چی؟ زن خندید و گفت: جای نگرانی نیست، فکرشم نکنید. بعد هم چشمکی زد و اضافه کرد. این برای شما یک موقعیت استثنائیه. ترلکوفسکی پرسید. شرایطش چیه؟ منصفانه. هزینه مختصری رو باید بابت لولکشی آب که تازه انجام شده بپردازید. قبلا برای آب جاری باید تا حیات پایین می رفتید. ترتیب این کار رو داده. و توالت. درست اون طرف حیات. از پله ها میرید پایین بعد از راه پله اون طرفی میرید بالا. از اونجا میتونید آپارتمان خودتون رو ببینید و برعکس. دوباره چشمک واقعی‌خانه ای زد و ادامه داد. این منظره ارزش دید زدن داره. تررکوفسکی در حال و هوایی نبود که این بامزدگی ها او را سر حال بیاورند. اما آپارتمان حتی با همین شرایط هم یک موقعیت باداورده بود. اجارش چقدره؟ 500 هزار فرانک ودیه. 15 هزار فرانک هم اجاره ماهانه. این خیلی زیاده. من نمیتونم بیشتر از چهارصد هزار فرانک بدم. این دیگه به من مربوط نمیشه باید یک جوری با صابونه کنار بیایید. یک چشمک دیگر. بهتر با خودش حرف بزنید صابونه همین طبقه پایین زندگی میکنه. من دیگه باید برگردم سر کارم. چیزی رو که گفتم فراموش نکنید. این فرصتی نیست که به سادگی از دست بدید. ترلکوفسکی به دنبال سرایدار از ها پایین رفت تا با آپارتمان صاحبخانه رسید. زنگ زد و منتظر ماند. زن با پا پاهسنگ گذاشته‌ای در را به رویش باز کرد و با نگاهی حاکی از سوء زن به او خیره شد. پیش از آنکه ترلکوفسکی فرصت کند چیزی بگوید، پیرزن با لحن پرخاشجویانه ای گفت: ما به کسی صدقه نمیدیم. میخواستم درباره آپارتمان چشم پیرزن مکاران باریک شدند. کدوم آپارتمان؟ آپارتمان طبقه بالا. میتونم موسیوزی رو ببینم؟ پیرزن ترلکوزکی را همانطور که ایستاده بود کنار در به حال خود رها کرد و به داخل آپارتمان برگشت. از داخل صدای زمزمه به گوش میرسید. بعد از چند لحظه پیرزن برگشت و به ترلکوزکی بگوید موسیوزی او را به حضور میپذیرد. پیرزن ترلکوفسکی را به اتاق نهارخوری هدایت کرد جایی که موسیوزی پشت میز غذاخوری نشسته بود و با وسواس بسیار دندانهایش را با نک تیز شده یک چوب کبریت پاک می کرد. با یک اشاره کوچک انگشت به ترلکوفسکی فهمان که همانجا منتظر بماند و به جستجوی موشکافانش در میان دندانهای آسیای بالایی ادامه داد تا اینکه تکه گوشت کوچکی را که به نوک چوب کبریت چسبیده بود از دهانش بیرون آورد. خوب براندازش کرد. بعد هم دوباره آن را به دهانش برگرداند و بلعید. تازه اینجا بود که توجهش به ترکوفسکی معطوف شد. آپارتمان دیدید؟ ترکوفسکی سرش را داد و گفت: "برای بله برای همین همینجا هستم. میخواستم درباره اجاره صحبت کنیم." هم هزار فرانک و دی ا هزار فرانک هم اجاره ماهانه. سرایدار هم همین را گفت اما میخواستم ببینم این حرف آخر شما چون من نمیتونم بیشتر از 400 هزار فرانک بدم. صاحبخانه ابروهایش را در هم کشید. یکی دو دقیقه سکوت برقرار شد و چشمهایش حرکات پیر زن را که مشغول جمع کردن میز غذا بود دنبال کردند. به نظر می به چیزهایی که چند لحظه پیش خورده فکر می کند. گهگاه سرش را به علامت تایید تکان می تا اینکه بالاخره به موضوع مورد بحث بازگشت. سرایدار گفت که آپارتمان تازه لوله آب شده؟ بله. این روزها پیدا کردن آپارتمان واقعا کار سختی شده. طبقه ششم دانشجویی زندگی میکنه که فقط برای یک اتاق نصف این پولو داده و تازه لوله کشی آب هم نداره. ترکوفسکی گلویش را صاف کرد. متوجه شد که او هم ابروهایش را در هم کشیده است. امیدوارم سوء تفاهم نشه من به هیچ وجه قصد ندارم مزایای آپارتمان شما رو نادیده بگیرم. اما هرچی باشه آپارتمان آشپزخانه نداره. توالت هم تو ساختمان کناریه. حالا فرض کنید که من حالم خوب نباشه که البته چنین چیزی به ندرت پیش میاد من از این بابت بهتون اطمینان میدم و مجبور باشم نیمه های شب خودمون به توالت برسونم خب تصدیق میکنید که کار چندان ساده ای نیست از طرف دیگه درسته که من هزار فرانک میدم اما این پولو نقد پرداخت میکنم صاحبخانه با بلند کردن دست حرف های را نیمه تمام گذاشت موضوع پول در میان نیست من قصد ندارم درباره پول جر رو بحث کنم مسیو ترکوفسکی مسیو ترکوفسکی مسئله سر پول نیست من برای گذران زندگی احتیاجی به پول شما ندارم الا اینکه خونمو اجاره میدم اینه که یک آپارتمان خالی دارم و خوب میدونم این روزها پیدا کردن آپارتمان خالی چقدر سخته کاملا همینطوره با این حال هر چیزی به جای خود من نخصیصم نخیر اجاره این آپارتمان پونصد هزار فرانک صاحب هستند هستن که روی چنین آپارتمانی هفتصد هزار فرانک قیمت میذارن که البته حقشونم هست اما من همون پونصد هزار فرانک رو میخوام و دلیلی هم نمیبینم که کمتر از این بگیرم ترکوفسکی این خطابه را با لبخندی حاکی از تفاهم به حرکات کوتاه سر دنبال کرد و گفت البته موسیازی من کاملا منظور شما رو میفهمم حرف شما کاملا منطقیه اما شما سیگار میکشید صاحبخانه معدبانه تارف او را رد کرد و تررکوفسکی به سخنانش ادامه داد هرچی باشه ما انسانهای متمدنی هستیم و حتی با داشتن نظرات مخالف هم میتونیم به تفاهم برسیم شما پونصد هزار می میخواهید این درست اما اگه کسی پیداشه که بخواد این پولو در سه قسط ماهانه بپردازه، این احتمالم هست که این سه سما تا سه سال طول بکشه. حالا به نظر شما، این به چهارصد هزار فرانک نقد که یک جا هم پرداخت میشه ترجیح داره؟ معلوم مکنه نداره. خیلی هم بهتر از شما میدونم که یک معامله نقدی از هر معامله دیگه بهتره. اما پونکسد هزار فرانک نقد رو هم به چهارصد هزار فرانک نقد ترجیح میدم ترلکوفسکی سیگارش را رو روشن کرد طبعا من هم قصد ندارم بگم اشتباه میکنید اما فقط برای چند لحظه فکر کنید مستجر قبلی هنوز زنده است و حتی ممکنه برگرده سر خونه و زندگیش در این صورت اگه هنوز بیمار باشه یا نتونه از پله بالا بره شاید بخواد آپارتمانو با چیز دیگه ای عوض کنه. و شما خوب می دونید که به لحاظ قانونی نمی تونید با چنین درخواستی مخالفت کنید. در این صورت حتی همون چهارصد هزار فرانک هم دست شما رو نمی گیره. اما با من من چهارصد هزار فرانک به شما میدم. هیچ مشکلی هم پیش نمیاد و همه چیز در زمینه ای کاملا دوستانه لفظی میشه. نه برای شما دردسری داره نه برای من. شما میتونید راه حل بهتری تصور کنید. شما از یک احتمال خیلی بعید حرف میزنید. شاید اما به هر حال غیر ممکن هم نیست. در حالی که با چهارصد هزار فرانک نقد هیچ مشکلی پیش نمیاد. بسیار خوب، بیایید چند لحظه این وش از موضوع رو کنار بذاریم. موسه و ترکوفسکی قبل گفتم که برای من پول مهمترین عامل تعیین کننده نیست بگید ببینم شما متأهلید ببخشید که اینو میپرسم اما موضوع موضوع بچه در میونه من و همسرم دیگه پیر شدیم و انجام خونه ساکت و ترکوسکی حرف موسیازی را قطع کرد اونقدر هم که فکر میکنید پیر نیستید موسیازی میدونم از چه حرف میزنم از ما سن سالی گذشته و تحمل سر و صدا رو نداریم. بنابراین از همین حالا به شما هشدار میدم اگه متعهل و بچه دارید حتی با یک میلیون فرانک هم حاضر نیستم خونم رو به شما اجاره بدم. خیالتون راحت باشه موسیزی چون این مشکلی با من ندارید. من آدم آرام و ساکتیم و مجرد مجردم هستم. مجررت هم بی درد سر نیستند اگه خیال دارید آپارتمانو به جایی برای قرارمدار با دوست تبدیل کنید باید بگم اشتباهی اومدید. ترجیح میدم با دو هزار آپارتمان آپارتمانو به کسی اجاره بدم که واقعا بهش احتیاطاج داره. ترکوفسکی با حرکت سر تعیید کرد. کاملا موافقم و چون خیالی هم ندارم. من آدم بی سر و صدایی هستم و از بین بیزارم از این بابت خیالتون راحت باشه. صاحب خانه گفت امیدوارم با سالاتم شما رو ناراحت نکرده باشم از قدیم کفتن جنگ اول بهتر از ظلها آخر کاملا نه با شماست این آقلانه کاره در این صورت این هم باید اضافه کنم که اینجا هیچکس کس حق نگهداری از حیوانات خانگی رو نداره نه سگ نه گربه و نه هیچ حیوان دیگهی چون قصدی ندارم بسیار خوب موسیو ترکوفسکی فلان نمیتونم جوابی به شما بدم تا زمانی که مستجر قبلی زنده است نمیشه در این باره با اتپینان حرف زد اما از شما خوشم اومده جوان جدی و عاقلی به نظر میرسید بنابراین تنها چیزی که در حال حاضر میتونم بگم اینه که هفته بعد باز هم به با ما سر بزنید تا اون موقع باید بتونم پاسخ قطعی به شما بدم ترکوفسکی پیش از رفتن از موسیازی بسیار تشکر کرد. وقتی داشت از مقابل اتاق سرایدار رد میشد، سرایدار که با گوشه پیشبندش مشغول خوش کردن بشقاب ها بود، نگاه عجیبی به ترکوفسکی انداخت که هیچ نشانی از آشنایی در آن نبود. بعد هم خوش کردن بشقاب ها را از سر گرفت. ترکوفسکی در خیابان ایستاده نگاهی به نمای بیرونی ساختمان بیاندازد. طبقات بالایی که غرق در نور آفتاب ماه سپتامبر بودند جلوهی کم و بیش با نشات به ساختمان بخشیده بودند دنبال یا آپارتمان خودش گشت اما بلافاصله به یاد آورد که پنجره رو به حیات باز میشد تمامی طبقه پنجم را رنگ صورتی زده بودند با کرکره هایی به رنگ زرد روشن تلفیق رنگها چندان با ظرافت نبود اما ترکیب کلیشان حسی از سبک سبکبالی به ساختمان میبخشید روی تمام پنجره‌های طبقه سوم جعبههایی از انواع گیاهان دیده می‌شد و در طبقه چهارم یک ردیف نرده آهنی روی قرنیز ها اضافه شده بود احتمالاً به خاطر امنیت بیشتر بچه‌ها هرچند با توجه به نظر مخالف صاحبخانه نسبت به بچه‌ها این احتمال بسیار بعید به نظر می‌رسید رسید پشتبان پر بود از دودکش‌هایی در اندازه ها و شکل‌های مختلف یک گربه که مطمئنا به هیچیک از ساکنان ساختمان تعلق نداشت در میان آنها پرسه می زد خندید برای یک آن خیال کرد به جای گربه اوست که آن بالا خودش را زیر پرتوهای نور خورشید گرم می کند اما بعد متوجه حرکت پردهای در طبقه دوم و در آپارتمان صاحبخانه شد و به سرعت آنجا را ترک کرد خیابان کاملا خلوت بود احتمالا به این خاطر که وقت نهار بود ترکوفسکی از یک عغزی فروشی مقداری نان و قطعه سوسیس سیردار خرید. روی یک نیمکد نشست و در حالی که به ساندویچش گاز میزد وقایه آن روز را در ذهنش مرور کرد. از همه چیز گذشته بحثش با صاحبخانه درست و منطقی به نظر می رسید. امکان بازگشتن مستعجر قبلی و توازای تعویض آپارتمان وجود داشت. و حتی شاید اصلا حالش خوب میشد. ترکوفسکی البته از صمیم قلب امیدوار بود حالا مستعجر قبلی بهتر شود. اما اگر اینطور نمیشد، این احتمال هم بود که از خودش وصیتنامه‌ای به جا گذاشته باشد در این صورت حق و حقوق صاحبخانه چه شد؟ آیا ترلکوسکی ناچار میشد دوبار پول ودیعه را بپردازد یک بار به صاحبخانه و یک بار هم به مستعجر قبلی ای کاش می توانست با دوستش اسکاپ که منشی یک وکیل دعاوی بود مشورت کند اما از بدشانسی او برای یک مأموریت شغلی خارج از شهر به سر می برد فکر کرد بهترین کار اینه که به عیادت مستجر قبلی برم به محض اینکه که را تمام کرد به ساختمان برگشت تا از سرایدار درباره مستجر قبلی سؤال کند سرایدار با تونخوی آشکاری به ترکوزکی گفت که نام مستجر قبلی مادمازل شول است ترکوزکی گفت زن بیچاره و نامش را پشت یک پاکت نامه یاد دشکه.